دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود دل که از ناوک مجگان تو در خون می باز مشتاق کمانخانه عبروی تو بود هم افدلا صبا که از تو پیامی می ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتنگیز جهان قمزه جادوی تو بود من سرگشته هم از اهل سلامت بودم دام راه هم شکن تره هندوی تو بود بگو شاوند غبا تا بگو شاید دل من که گشادی که مرا بود ز پحلوی تو بود به وفای تو که بر تورت حافظ بگذرد که از جهان میشد و در آرزوی روی تو بود